یک در این برنامه بارها و بارها به ضرورت سرعت اشاره کردم امروزه همه عجله دارند مشتریاتون که تا حالا اصلا نمیدونستند به محصول یا خدمات شما احتیاج دارند حالا هر وقت هم که تحویلشون میدید میگن دیره امروزه مردم فوقالعاده بی دیگه هیچکس حاضر نیست در صف بیسته یک اینترنت گرد به طور متوسط 7 تا 8 ثانیه منتظر میشه تا یک صفحه در اینترنت بیاد و اگه بیشتر طول بکشه به سراغ یک صفحه دیگه میره مشهودترین خصوصیت شناخته شده افراد با کارایی بالا در هر زمینه ای اینه که اون دائما در جنب و جوشه فرد با کارایی بالا دست به کار میشه تا کار رو به نتیجه برسونه فرد با کارایی بالا بیوقف بارها و بارها برای نزدیک شدن به هدف اقدام میکنه. از طرف دیگه بزرگترین مانع در برابر کارایی بالا تمایل به حرف زدن بیش از حد درباره موضوعه خیلی افراد فکر میکنن خوب حرف زدن و دائما برنامه ریزی کردن همون عمل کردنه. اما فقط عمل کردن همون عمل کردنه. فقط اجرا کردن همون اجرا کردنه، فقط به نتیجه رسوندن کاره که اهمیت داره. در نهایت باید بدونیم که شما به خاطر کسب نتیجه پول می گیرید نتایج هستند که اهمیت دارند و برای کسب نتایج باید چدیدن عملگرا باشید. به این ترتیبه که کاراییتون در تمام زمینه ها بالا میره. پس دست به کار بشید. خبر خوب اینه که هرچه چه تر حرکت کنید احساس بهتری خواهید داشت. هرچه سریعتر حرکت کنید کار بیشتری انجام خواهید داد. هرچه سریتر حرکت کنید، انرژی بیشتری خواهید داشت و هرچه سریتر حرکت کنید، بیشتر یاد میگیرید و نتیجه بیشتری کسب میکنید و هرچه سریتر حرکت کنید، بیشتر پول در میارید، بیشتر حقوق میگیرید و سریتر ترفی پیدا میکنید. اجازه بدید 21 یک روش عالی برای اینکه زمانتون رو مدیریت و کاراییتون رو دوبرابر کنید را با این فرمول ساده خلاصه کنم. از اینجا شروع کنید. یک تعیین کنید خواستهاتون دقیقا چه هدف و مقصودهایی است. دو. همه کارهایی رو که امروز باید بکنید تا شما را به سوی دستیابی به هدف و مقصودهاتون ببره فهرست کنید. سه. فهرست هاتون رو بر مبنای اولویت مرتب کنید و فعالیت های علف یک یا مهمترین فعالیت هاتون رو انتخاب کنید. چهار. بلا فاصله با فعالیت های شماره 1 شروع کنید و خودتون رو منضبط کنید که با تمرکز کامل به اون بپردازید تا صد درصد تمام بشه. پنج در نهایت مرتب برای خودتون این کلمات فوق‌العاده رو تکرار کنید. همین حالا انجامش بده. همین حالا انجامش بده. همین حالا انجامش بده. ما در بهترین زمان در کل تاریخ بشریت زندگی می‌کنیم. اون که میتونید به دست بیارید هیچ محدودیتی نداره به جز محدودیتی که خودتون برای خودتون میگذارید. کار شما اینه که یکی از کاراترین افراد در رشتهی کاری خودتون بشید. هاتون اینه که به این موضوع شهرت پیدا کنید که هر کس بخواد کاری به نتیجه برسه اول به سراغ شما میاد. کار شما اینه که یکی از کاراترین و ارزشمندترین افراد در سازمان یا کسب و کار خودتون بشید. کار شما اینه که بیشتر پول بگیرید و سریتر ترفی پیدا کنید کار شما اینه که یک زندگی فوقالعاده داشته باشید و با مدیریت زمان و دو برابر کردن کاراییتون به این هدف برسید ممنون از اینکه به این برنامه گوش کردید موفق باشید